وَإِذْ طَالَبَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَعَجْلُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنبِيَاءِ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ الحمد لِلَّهِ اسْتَوْفِيقَ طَرْدِغارِ كِتَابِ تَوْحِيدِ يِكْ الان در خدمت شما هستیم با توحید دو یک مباحثی دیگر از مباحث توحید بحث ها و گفتگوهایی داریم در بحث توحید خداوند یکتا اون توحیدی که ختام بحثمون در توحید یک بود ما دنو توحید را معرفی کردیم توحید علمی و توحید عملی توحید علمی برمی به به یکتا قرار دادن خداوند در افعال خودش و توشید عملی یک تا قرار دادن خداوند در افعال بندگان یعنی ماها بندگان باید در اون افعالی که خداوند خواسته ما برای خودش انجام بدیم خداوند رو در اون افعال یک تا قرار بدیم چون خداوند غیر از دین خالص برای خودش چیز دیگری نزد ما نمیپذیره الله، لله الله دین خالص. برای خداوند فقط دین خالصه ما میدونیم که خداوند هم ما را خلقت کرده به خاطر این دین خالص به خاطر اینکه ما در عبادتایی که خداوند از خواست انجام بدیم خداوند را در اون براش یکتا قرار بدیم در اون عبادت هامون فقط خداوند را بپرسیم پرستشمون و دعامون اطاعتمون فقط از خداوند باری تعالی باشه و خداوند پیغمبران را میفرسته به خاطر کلمه توحید کلمه لا اله الا الله الا الله لا اله الا الله چه ای هست که نوح فرستاده میشه ابراهیم فرستاده میشه موسی فرستاده میشه عیسیٰ فرستاده میشه و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرستاده میشه این چه کلمه ای هست؟ چه معنایی دارد؟ آیا اینها پیانبران اومدن که به مردم بگوین که خداوند خالق یک تاست جز اون خدا خدای دیگر نیست؟ آیا اینچینین پیانبران مبروس شدهاند که بیان اینچینین حرفی را بزنن؟ یا اینکه نه؟ قصدشون چیزی دیگری بود؟ ما میدونیم که هدف از خلقت ماها بندگان این بوده که خداوند یکتا را بپرستیم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جن و انس خضفا می دیات خلقت نکردیم مگر اینکه ما را بپرستان و پیامبران هم فرستاد و این مننت را بر سر ما گذاشت که ماها را توجیه بکنن ماها را دعوت بدن به سوی یکتا پرستی همونطور که خداوند متعال در قرآن میفرماید ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان الله الله واشركوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان در هر امتی پیامبری را فرستادیم. الله تا اینکه خداوند خداوندی را بپرسید و از تاقود دوری بکنید. در جاهلیت مشرکین یا درخت را میپرسیدن. یا مرده را میپرسیدن. یا بطر را میپرسیدن. لات و عزا یا انسانها انسانهای را میپرسیدن همچون فرعون. و یا اطاعت میکردن از علماشون در حلال و حرام و حکم خدا، را زیر پا می گذاشتن. هر کسی برای خودش خدایی داشت که او را بپرستد یا از او اطاعت و فرمانبری داشته باشد بله آنها مشرکین برای خودشون خدایانی داشتند که برایشون حب بکنن و اونها را بین خودشون و بین خداوند یکتا واسطه قرار بدن و میگفتن ما نعبدهم الا ليقربونا الله ذلفا ما آنها را نمیپرسید جز اینکه ما را به خداوند یکتا نزدیک بکنند یعنی هدف ما این است که اونها ما را به خداوند نزدیک کنند و یا در جای دیگر خداوند از زبان اونها چنین یاد می کند که میگفتن گفتن هاولای شفاعون عند الله اینها شفیع ما هستن خاطر همین وقتی که پیامبری فرستاده می شد می اجعل, ال... اجعل الالهت اله واحده ایا اومده که اله ما را یکی قرار بده اینه هده عجاب این یه چیز عجیبی هست بلی اونها عجیب بود که این خدایان شفیع نباشند، اون بودها، اون مردها، اون درختان واسطه نباشند بین مخلوقات و بین خداوند باری تعالی اونها برای خداوند شفعا قرار داده بودن مثلا قوم نوح چطور وارد شرک اکبر شدن چطور بین خودشون و خدا واسطه قرار دادند؟ مگر چی بود؟ خداوند در قرآن یاد میکنه وقال وقالوا لا تذرون آلهتكم از قوم نوح چنین یاد میکنه که گفتن الالهاتون اونهایی که شفیع بین خودتون و خداوند قرار میدهید رها نکنید ولا نودن ولا سواع ولا و لا تذرن ود و لا سوا و لا یغوث و یعوق و نسرا اینها اشخاص آدمای صالحی بودند همونطور که ابن عباس روایت میکنه در صحیح بخاری اشخاص صالح بودند که مردم اونها را دوست داشتن اشخاص متقی بودن بعد از اینکه اونها فوت شدند اومدن گفتند که بزرگ داشتی از اینها را داشته باشیم بیاییم اونها عکسایی از اونها را بکشیم بر تخت سنگ و بیاییم یاد و یادواره اونها را زنده بسازیم. کم کم به مرور زمان اینها را واسطه بین خودشون و خداوند قرار دادند و گفتند پروردگارا اینها پاک بودن و ما ناپاکیم. پروردگارا به مکانت اینها، به جایگاه اینها، به دعای اینها دعای ما را استجابت کن. به مرور زمان به مرور زمان زمان که میگذرد گذرت اونها دعاشو رو طلب و درخواستش درخواستشو مستقیما از این بتا میخوان بله این چنین شد در امت اومد در در در بشریت اومد اومدن بین خودشون و خداوند باری تعالی مردگانی را قرار دادن واسطه واسطه از مردگان قرار دادن در صورتی که خداوند چنانچه ما داشتیم در توحید یک خداوند سمیع و غثیر خداوند ارحم راحیمین هر جا و هر کجا بنده را می‌بیند و میشنود. و از رحمش و از علم غیبش می داند که چه و چه چیزی و کجا به بنده بدهد. ولی اون مرده از علم غیب با خبر نیست. نمی داند که آن چیز به درد اون یک شخص اون فرد می خورد یا نمی خورد. ولی خداوند باری تعالی می داند که چه چی چیزی به درد بنده می خورد یا نمی خورد. بله. اونها خداوند یکتا را قبول داشتند ولی که بین خودشون و بین خداوند واسطه قرار می دادن. خاطر همین، خداوند خطاب به رسول الله صلی الله علیه و می سلام که بگوید به مشرکین سوال بپرس که خداوند یکتا کیست، خالق کیست، رازق کیست. و لئن هم من خلق السماوات والأرض لیقولن الله. و لئن من خلق السماوات والأرض لیقولن الله. اگر از آنها بپرسی که خالق آسمان‌ها و زمین کیست، میگویند الله. چندین جا در قرآن چنین خداوند یاد میکند. که هرگاه از آنها بفر که خالق است قل من من منتماعی وال بگووکی رزک کی روزی تو میرسونه آخر می گن فصل قولون الله الله هست که رزق روزی میرسونه الله هست که می میرانه و زنده زند زند زند زند زند زند می خب پس خداوندی که مرگ و زندگی به دست اوست خداوندی که رزق روزی به دست او خداباندی که خلقق شما قبولش دارید خداوندی که قبول دارید صدای همه کس را میشتهبد همه کس را میبیند. پس چرا؟ میاییت بوت را بین خودتون یا مرده یا ستاره را بین خودتون و خداوند یکتا واسطه قرار میدید چرا این چین کاری را انجام میدید بله پیانبران خداوند اومدن که به بندگان بگویند بین خودتون و خداوند واسطه قرار ندید مستقیما خودتون خداوند یکتا را خطاب قرار بدی و از او مستقیمن بقاید و اذا سألت عبادی انی فا اینی قریب و دعوت الدع اگر بندگان از من پرسیدن بگو که من نزدیکم یعنی خودشون از من بقاهم صداشون رو میشنمم اونها رو میبینم و دعاشونم استجابت میکنم بله خداوند باری تعالی میبیند و میشنود. و, هر و هیچ کدوم از بندگان تبعیزی قائل نمیشه و هر کجا بنده باشد دعای اون بنده را خداوند استجابت می کند پس اینکه خداوند یک تاس در روزیش و در خلقت و آفرینشش مشرکین قبول داشتند. پس مشکلشون کجا بود؟ اونها توشید علمی را قبول لاشتن اینکه خداوند آفریننده یک است را قبول لاشتن مشکلشون کجا بود؟ مشکلشون در این بود که بین خودشون و بین خداوند باری تعالی واسطه قرار می دادن. و نمی اومدن درخواست و تقاضای خودشون مستقیم از خداوند بخواهند به خاطر همین به خاطر اینکه معنای صحیح کلمه لا اله الا الله خداوند بهمون بگه چند اینجا در قرآن اشاره میکنه به معنای صحیح کلمه لا اله الا الله لا اله نفیه لا اله نفیه و لا هم برای خودش خبری داره خبر لا که در این کلمه باید تفسیر بشه، باید طبق قرآن تفسیر بشه و طبق معنای الهی که در این کلمه نهفته است. ما باید بریم به کلمه اله در لغت یک قسمتش و بریم به قرآن تا این که ببینیم معنای حقیقی این کلمه چی اله در لغت به معنای معلوه. الها یاله الهه. همونطور که فیروزابادی فیرو نقل میکنه و همچنین جوهری در کتاب صحاح میگوید ای عبد عباده. اصل تعلیه یعنی عبادت اصل تعلیه یعنی اینکه شخصی را با محبت و تعظیم صدا بزنیم این اصل تعلیه حال خبر الله چیه خبر الاله خبر الله چیه اینجا در این کلمه ای توحید لا اله لا اله ای لامعبوده اله معنای مألوه بر بر بر وزن اله بر فعال به معنای مفعول یعنی اصل اله بر وزن فعال هست که به معنای مفعوله. ای معبود. یعنی لا اله معبود یا لا معبوده که خبر الله هست. این قسمت نفیه. نفی معبودات چون آنها خداوند یک را قبول داشتن و خدا خداوند نخ می که اونها خدایانی داشتند خدایانی بودند. خداوند انکار نمیکنه که خدای خدایانی نبودند. خداوند میگه اجعل الاله تا الهان واحد. مشکی کن چینین گفتن. مگر محمد صلی الله علیه و سلم اومده که خدایان رایی قرار بده بله اونها خدایان بودن تعظیمشون میکردن و محبتشون داشتن پس خدایان بودن چه نوع را خداوند در این کلمه توشید لا اله الا الله که تمامی پیامبران را فرستاده به خاطر این کلمه چه الهی را خداوند اینجا میخواد نف بکنه هیچ الهی نیست جز الله. چه نوع الهی نیست اله های باطلی نیست. یعنی هیچ الهی مستحق پرستش نیست، هیچ کسی نباید پرستیده بشه، نفی پرستش از تمامی معبودات. از تمامی، الان چی میخواد شخص باشه، مرده باشه، زنده باشه، میخواد فرعون، نمرود یا هر کسی باشه. نفی الوهیت و عبودیت از اینها و اثبات اون برای خداوند یک تا. برای خداوند تعالا. یعنی هیچ کسی را نباید بپرستیم جز خداوند یکتا چون خداوند در قران می بیاد ذالک بان الله هو والحق خداوند به حق که پرسیده میشه و انما يدعون من دونه هو الباطل آن چیزهایی که پرسیدی میشن جز خداوند یکتا باطل هستند پس خدایندی که به حق پرسیده میشه یعنی لا معبوده بحق یا مع... لا یا بگم لا معبود حق الا الله هیچ کسی نیست که به حق پرسیده بشه جز الله یکتا پس فقط خداوند یکتا را باید بپرسی و فقط او را با صدا بزنیم و فریاد بزنیم و کسی دیگر جز او را نه با صدا بزنیم خداوند معبوده لا اله معبود یا لا معبوده نه اینکه بگیم لا خالق بلکه لا خالقه را همه کس قبول داشت گفتیم ابو جهل هم قبول داشت ولا انسالتم من خلق السماوات والارض يقولون الله اگر بگویی که آسمان و زمین را آفریده آفریننده کیست میگویند الله الله یکتا را قبول دارند ولی که مشکلشون در اینی که بین خودشون و خداوند یکتا واسطه قرار بدن. پس اونها خالق رو قبول داشتن، توحید علمی رو قبول داشتن، مشکلشون در توحید عملی بود که خداوند نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و رسول الله صلی الله علیه و و دیگر پیامبران رو به به خاطری که مردم رو توجیه بکنن به اینکه هدف از خلقتشون عبودیت بوده، اینکه خداوند رو معبود یکتاشون قرار بدن، یکتا پرس بشن. خداوند از زبان نوح ناقم يكون ميجويا بقوم الشنิงوف لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولقد أرسلنا نوح لقد أرسلنا نوحا إلى قومه نوح رفرسادين بقومه شيبو بقومه كلمة إله إلا الله, الله كذابات مجد بقومه شيبود إن كلمه المشتركه بين تماميه أنبياء في أمران الخدا بود فقال يا قوم عبد الله أي قوم خدا رب إثبات عبودية بري خداوات معنای لا اله الا الله بپرسید خداوند یکتا و نپرسید جز او کسی دیگری را مالک من اله غیره غیر از او کسی معبود دیگری شما ندارید بله نوح چنین دعوت میداد نه تنها نوح بلکه دعوت خود قرآن هم به همین چیز هست دعوت به عبودیت فرسشت الیف لام را کتاب احکمت آیاته کتابی که آیاتش محکمه چی چیزی در این آیات محکمه است؟ ثم فصلت من لدن خبیر اون کسی که صاحبه حکمت بوده و داناست این که نپرسیت الله اینکه که جز الله. مستحق عبودیت این که هیچ کسی مستحق عبودیت الله که نفی عبودیت نفی پرسیش اینکه ما خداوند را یکتا قرار بدیم در عملمون، در عبادتمون، در اطاعتمون. الله تعبود ایلا الله. اینکه جز خداوندی یک ترا کسی دیگر نفرستی. این دعوت قرآن، و این دعوت نوح بود علیه السلام. ابراهیم اهمیت دار، و از قال ابراهیم لآبیه و قومه، این نی براآم مم بحث براءته نفي عبودیت از خداوند، خداون اني وراء من به بقومش گف به پدرش گف ابراهيم عليه السلام من بري هستم از آن چيزي که شما ميپرسيد نفي پرستش نه اينكه بیاد به اونها بگه خداوند را باور داشته باشيد خداوند خالق رازقه، نه خداوند را قبول داشتن که خداوند خالق رازقه که غیر از خدا را واسطه بین خودشون و خداوند قرار ميدادند به خاطر همين ابراهيم مياد به و پدرش ميگهيت مگر اون کسی که من رو خلقات کرده استثناء شد اثبات شد نف و اثبات یعنی این که نفی اولوهیت بشه نفی عبودیت بشه از غیر خدا و با اثبات بشه برای خداوند بنده یکتا فا اینه سیهدین و جعلها کلمة باقیتا فی عقیبه لعلهم یرجعون بله بل این کلمه کلمه باقی را بزاش کلمه اتوشید لا اله الا الله این که به حق جز خدا بنده نیست این را در نسل خودش گذاشت تا این که نسلش پیغمبران دیگری که خواهند و, و کسانی که پیروان این پیغمبران خواهند شد به این کلمه بگردن کلمه توحید کلمه لا اله الا الله که معبوده اقرار به این که معبوده به حق جز خداوند نیست و کسی جز خداوند یک تا نباید اطاعت و عبادت بشه, بشه. بله و این چنین هست دعوت خود قرآن به اهل کتاب به یهود و نصارا و دیگر ادیان که این به این کلمه بربگردند همونطور که خداوند یکتا میگوید قل یا اهل الكتاب قل یا اهل الكتاب تعالوا الی كلمه سواء بیننا و بینکم بیاد و اون کلمه مشترک بین ما و شما بربگردیم چه کلمه مشترکی هست الله تعالی نعبد الا الله اینی که جز الله یکتا را نپرستیم یکتا قرار دادن خداوند در پرستش الله نعبد الا الله ولا نشرك و لا نشرک به شیء به هیچ شرکی در عبودیتش در عبادتش در پرستشش برای خداوند هیچ نوع شریکی قرار ندیم بیاییم مستقیمن او را صدا بزنیم بیاییم زبحمون قربانیمون فقط برای خداوند انجام بدیم ولا لا نشرک بیشیئه و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله و نیاییم از همدیگر اطاعت بکنیم بیاییم فقط از خداوند یکتا اطاعت بکنیم چون خداوند ماها را خلقت کرده که فقط فرمان خودش بشیم از او اطاعت بکنیم نه از علما، نه از، نمیدونم اشخاص پدر آبا و اجداد. و اذا قيل لهم ما انزل الله قال، بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. اگر بهشون میگفتن بیا پیروی از قرآن بکنید، پیروی از کلام خدا بکنید، میگفتن که ما پیروی از آبا و اجداد خودمون می‌کنیم، میکنیم میکنیم. خیر ما نباید پیروی از آبا و اجدادمون بکنیم. با ما باید تابع حق باشیم، تابع قرآن باشیم، تابع پیامبر خدا باشیم. خداوند ملامت میزنه سرزنش میزنه یهود و نصارا بخاطر این اینکه در احکام در حلال و حرام اومدن از علماشون پیربی کردن خداون در قرآن میگوید از خطابی که داره به یهود و نصارا میگوید اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله اتخذوا احبارهم و رهبانهم اون علماشون کشیشهاشون اومدن ارباب قرار رب قرار دادن عدی ابن حاتم تا اومد گفت یا رسول الله ما که اونها رو پروردگار قرار ندادیم رب قرار ندادیم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن مگر اونها نبودن که اگر چیزی خدا حرام کرده بود اونها حلال میکردن شما اطاعت نمیکردن اطاعت نمیکردی از اونها به حلالش نمیکردی گفت آری گفت همین طور هم اگر چیزی خدا حلال می‌کرد اونها حرام می‌کردن شما حرام می‌کردید فتلک عبادتهم این عبادت اونها هست بخاطر خاطر همین در دنباله آیه خدا خداوند اتخذ احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم و مسیح ابن مریم هم همین طور اومدن ازش او را واسطه بین خودشون و خدا قرار دادن ولی که خداوند میگوید و ما امرو الا لیعبد الها واحدا اونها امن نشدند دستور داده نشدند دادن مگر یک اله و یک پروردگار است عبادت بکنن و ما امرو الا لیعبد آنها دستور داده نشدند دادن اثبات عبودیت برای خداوند اونها دستور داده نشدن جز که خداوند یک را عبادت بکنه و ما عمره الا لیعبد الها واحدا الها واحدا فقط یک خدا را صدا بزنن فقط از یک خدا بخواهن و فقط برای یک خدا عبادتاشون را انجام بدن و اطاعت از او بکنن ذبحشون نظرشون، قربانیشون قسمشون قسم خوردن فقط برای خدا قسم بخورن قسم بغیر از خدا بند نخورن چون خداوند میگوید من حلف بغیر الله فقط اشرای کسی که قسم بغیر خدا بخورد دوچار شرک شده انسان نباید قسم به غیر خدا و الله اصلا نه میکنه اصحاب رو از اینکه قسم بخورم به غیر خودش لا تحلفوا با ابائكم تو قسم نخورید بعضی قسم میخورن به جانم به فلانم به فرزندم به سر فرزندم اینها درست نیست خداوند دوست نداره قسم رو انسان باید فقط به خداوند بخوره فقط خداوند را باید تعظیم میکنه جز خدا را نباید کسی دیگه تعظیم میکنه و نه و دعاشو روزنیازش رو به جز از خداوند از کسی دیگر نخواهد بله ما باید خداوند یکتا را صدا بزنیم و فقط از او بخواهیم این کلمه ای توحید هست کلمه ای که دعوت تمامی انبیا بوده از گفتیم از آدم گرفته تا رسول الله صلی الله علیه و سلم همشون اومدن که بهمون بگن خداوند یکتا فقط مستحق پرستشه و کسی دیگر جز او مستحق پرستش نیست و مستحق این نیست کسی جز خداوند که او را صدا بزنیم و فریاد بزنیم و به درگاهش داشته باشیم ذلک بان الله هو الحق وأنما یدعون من دونه هو الباطل خداوند حق که پرستیده میشه و جز خداوند کسی دیگر مستحق پرستش نیست ما میدونیم مشرکینی که اومدن واسطه بین خودشون و خداوند یکتا قرار دادن تنها این نبود که بیان اونها در دعاشون بیان از اونها بخواهند اونها را تعظیم میکردن اونها را به درجه خدایی میرسوندن می اومدن اونها رو فریاد می زدن صدا می زدن می گفتن ای لات می ای فلانی به دادمون برس تعظیمشون می کردن. شریک خداوند در رحمش قرار می دادن. همانطور که خدا ارحم و مینه بلکه اونها معبوداتشون را رحمش بالاتر از خدا میدونستند. یعنی اینکه خداوند لطفی به درگاه به اونها نداره رحمی به اونها نداره لطف اون مرده که در خاک خوابیده، یا اون بوت یا اون شخص یا هر شخصی دیگر لطفش و مهربانیش از خدا بیشتره اومدن اونها را صدا زدن اون اومدن دعاهاشون از اونها طلبیدن که اونها شاید رحمشون بکنن خداوند رحم نداره چی سوءظنی داشتن به خداوند خداوند دیگر رحمن و رحمینه انسان این چنین باید سوءظن بهش داشته باشه نگاه بکنید سوزن به خودمون اینکه خدا نگاه ما نمی کنه و اینکه خدا رحم به حال ما نداره ما را به کجا کشن ما را به شرک اکبر کشن قوم نوح که فاصله زمانی بینشون و بین آدم خیلی زیاد نبود چطور گمراه شدن این همه پیامبران خدا بین اونها بود ولی که با وجود رو اووردن به بت‌ها رو به اشخاص اشخاصی را پرستیدن ما خداوند این پیامبران را برای فرستاد اینکه تا اینکه فقط خداوند یک را صدا بزنیم و فقط تن به ذلت او در دهیم او را فقط بپرسیم به درگاه او فقط زلیل بشیم. دست نیاز خودمون را فقط به او بلند بکنیم. این خلاصه درس امروز هست؟ پس کلمه توحید کلمه لا اله الا الله اولین در درسی, درسی هست که در توحید دو می‌خونیم کلمه لا اله الا الله یک تا قرار دادن خداوند در عبودیت و پرستش و جز خداوند را نباید کسی دیگر بپرستیم ذلک بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونی هو الباطل خداوند که فقط به حق صدا زده میشه و کسانی که صدا زده میشن جز خداوند یک تا اونها باطلا پس خداوند را با یک تا قرار بدیم در عبادتیمون در دعامون الراز و نیازمون خداوند یکتا یک تا را فقط باید صدا بزنیم و اما اینکه ما قبول داشته باشیم که خداوند فقط یه آفریندی یک تاست. این چیز مشترکی بوده بین با و مشرکین ابو جهلم اینو قبول داشته ولی به دردش نخورد فرعون این چیزو قبول داشته همونطور که خداوند میگوید در قرآن از زمان فرعون و جحدو بها و سیقنتها امفسهم بلی فرعون و اتباعش قبول داشتن که خداوند یک تایی هست و یقینم داشت وجهدوا بها واستيقنت انفسهم نفسشون یقین این قضیه داشت یقین داشت که خداوند یکتاست در خلق در خلقتش و در آفرینشش ولی که اومد ادعای خدایی کرد تا مردم رو گمراه بکنه واخر دعوان الحمد لله رب العالمین صل الله علی محمد و علی آل محمد